راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رتل گران توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن گل بانگ بلندی بر آسمان توان زد قد خمیده ما سهلت نماییدم ما بر چشم دشمنان تیر از این کمان در خان قهنه گنجد اصرار اشخ بازی جامعه می مغانه هم با مغان تبان زد در ویش را نباشد برگ سرای سلطان مایم ما و کهن دلغی کاتش در آن تبان زد اهل نظر دو آلم در یک نظر ببازند اشخ است دا و اول بر نقد جان توان زد گر دولت وسالت خواهد دری گشودن سرها بدین تخیل بر آستان توان زد عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد شد رهن سلامت ظلف تو عجب نیست که راغ زن تو باشی صد کار وان توان زد حافظ به حق قرآن که از شید و زر بازا باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد